عل در نماز حواس انسان پرت میشه حالا چجوری حواس را جمع کنیم بهترین نماز همان است که انسان در نماز با خوشو و حضور کامل قلب نماز را بخونه حضور قلب در نماز ضروری است روح نماز این است نماز بزرگترین عبادتی است که انسان با رب عالمی نزدیک میشه نزدیک حالت انسان با خداوند متعال حالت سجده ایش هست حالا استادی روی نواز داخل حدیث تحید آره نبی کری فرمودند کہ اللہ رب العالمین می فرمائند کہ سور فاتحه بین من و بین بند من تقسیم شده می فرمائند کہ ذا قال الحمد لله رب العالمین اللہ می فرمائند کہ حمدنی رب عبدی الحمد رب خدا میگه که بنده من در تعریف میکنه الرحمن الرحیم مجدنی عدی این داره تن بزرگی بنا بیار میکنه تا که برین جلوتر یا اکن عبد و یا اکن اسپاین که میرسی فرمونه ال... بینی و بین عدی و لعدی ما سهل این چیز خصوصی من و بنده من هست و بنده من, من چی بخواد به اون عطا میکنه این داره الله رب العالمی میفرماین بین ما بین بنده من هست این حالا چی بخواد به اون عطا این عطاعت، این داده ها، دادهش خداوندی زمانی میرسند که انسان توجه داشته باشه تمرکز داشته باشه تمرکز بهتری چیز برای تمرکز حواست در نماز توجه هست چیزی حالا ما نماز دست میدین چون ما توجه ندارین نماز میخوانین زیاد توجه نمیکن چون توجه نمیکنین حالا نمازهای ما دیگه همجوری هم اما اگر متوجه نماز باشین معاظه باشین حواست پرک نمیشه بهترین کار مواظبت هست به این صورت مواظب میشه وقتی الله اکبر گفتی این که باید هنگام الله اکبر بدونی چیکار میکنین فرضی الله اکبر نیت فرضی و بدون علمش چیکار برای ورچی الله اکبر میگه این را باید بدونید بعد که نماز شروع شد حالا حواس من مواظب باشه نماز حواسرا را برشت دارن تا را برش میگردان این است بهترین کار مواظبت اگر داشته باشید نماز درست میشه و حواس پرت نمیشه واظبات همین انسان وظیکرا و با حواس کامل نماز این آسانترین را همین دوم که فکر بکونی و استحضار که من در جلوی الله رب العالمین ایستادم تو الله رب العالمین را مشاهده بکونی داری می‌بینی این به این صورت الله رو عبادت بکونی داری الله رو می‌بینی اگر کا حواسه فکر کلا من جلوی الله رب العالمین استادیم نماز انسان با حواست کامل خانده می شواده اگر رفت بیرون دوباره برگردنده و موازبه بخارج داده به شما اجر بزرگی می یعنی اینه نماز می و حواست میری بیرون اینکه غاهران بیرون دوبار اومد این دلیل بخاتی که نحکات نشده با اما اینکه از دوبار نماز داخل نماز بازار باشیم اتفاقی باشیم چابهار باشیم لب دریا باشیم حالا چون که نوروز دیگه یا داخل بازار باشیم آرزوهایی که دارم همراه با فلانی باشیم فلان جاب باشیم غاگای متاسفانه حتی خیالات شیطان داخل نماز می آیند خیالات گنا داخل نماز می آیند حالا از دوبار حال ما باشه پس حالما زار هست. اما گاهی رف گاهی برگرد کورا و عذابت کردی این خوب است چون که انسان گاهی نمی برمیگردد این الله رب العالمین دیگه این اینو کمک میکنه